بسم الله الرحمن الرحیم کتاب تصریف و زنجانی بحث اسم فاعل و اسم مفعول بودیم اسم فاعل و اسم مفعول روش ساختش از سلاسی مجرد رو خوندیم الان اسم فاعل و اسم مفعول از سلاسی مزید یا بالاتر از آن یعنی فعلی که بیش از سه حرف اصلی داشته باشد روش ساختش همین هست که میخونیم اسم الفاعل والمفعولی مما زاده علف ثلاثتی اسم فاعل و مفعول از آن فیله هایی که بیش از سه حرف دارند بیش از سه حرف اصلی دارند خیلی ساده هست علامت مزاره رو بر داریم. به آن میم زمداری می میم مضمومی. یک حرف مانده به آخر در اسم فاعل کسره میگیرد در اسم مفعول فتحه میگیرد گیرد یستخدیمو در اسم فاعل می مستخدم اسم مفعولش می شود حالا بر اساس کتاب بریم جلو و اما ما زاد علی ثلاثتن اما فعلی که اضافه بر سه حرف داشته باشد فالضابط فيه أن تضع فی مضارعه المیم المضمومة موضع حرف المضارعة در بیش از سه حرف یا فعلی که بیش از سه حرف اصلی داشته باشد حالا چه ثلاثی مزید باشد چه ربائی باشد فرقی ندارد میگه ضابط درش این هست که حرف مزارش رو بر می داریم و به جای آن میم زمدار می آوریم پس یک ریمو یارو بر می داریم به جایش میم زمدار می, می آوریم می شود مک اگر اسم فایل باشد ما قبل آخر کسره میگردد مکرمه و اگر اسم مفعول مکرم و تکسرو ما قبل آخرهی فی اسم الفاعلی و کسر میدهی ما قبل آخر را در اسم فاعل خطاب قرار میدهد اونی رو که داره آموزشش میده میگه ضابط این هست که در مزارع یعنی فعل مزارعش میم زمداری رو جای حرف مزارع میآوری و ما آخر رو در اسم فائل کسرمی میدهی و تفتحهو في اسم المفعول و میدهی دهی آن را یعنی ما قبل آخر را در اسم مفعول نحو مکرم مکرم اسم فائل هست مکرم اسم مفعول هست مکرم مکرمن یعنی اکرام کننده، مکرم یعنی اکرام شده مدحرج، این ربائی رو مثالش هست دحرجه یو فرقی نداره چه سلاسی مزید باشد، چه ربائی شیوه ساخت همین یکی هست مدحرج، مدحرج، مستخرج، مستخرج بهمين صادقي وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول في بعض المواضع نقطي مهم ديجار وقاهي مصاويست لفظ فاعل وال اسم فاعل واسم المفعول دربع جاها يعني بين اسم فاعل وبين اسم مفعول لفظا ك كمحابين مانند محاب پس محاب که اسم فائل حابب یحابب محابب در اصل البته چون مزاعف هست دو تا حرف همجنس در همده ادغام شدن یعنی حرکت بای اولی رو برداشتیم و دوتا حرف هم جنس در همدیگر ادغام شدند پس محاب در اصل اسم فائلش هست محابب اسم مفعولش هست محابب ولی چون مضاعف هست و دوتا حرف هم جنس کنار هم هستند حرکت اولی برداشته شده و در همدیگر ادغام شدند که لفظا هم اسم فائل میشه محاب و هم اسم مفعولش این بر وزن مفاعله هست متحاب متحاب باز هم مزاقف هست ولی بر وزن تفاعل هست تحابب در اصل یتحاببو اسم فاعلش میشه متحابب اسم مفولش میشه متحابب ولی چون حرکت از بای اولی برداشته شده و ادغام شده میشه متحاب هم اسم فاعلش هم اسم مفعولش لفظا یکی هستن یا مختار مختار اسم فائل و اسم مفعولش یكیست مختار اجوف هست از باب افتعال هست مختار از اجوف هست بر وزن افتعال هست که سیغه اسم فائل و اسم مفعول مصاویست و یکیست در اصل بوده است مختیر مختیر یا متحرک ما قبل مفتو تبدیل به الف شده شده مختار مزتر که از باب افتعال هست اصلش مزترر هست در اسم فائل و مزترر در اسم مفول ولی چون مضاعف هست ادغام شده معتد همچنین مضاعف هست از باب افتعال هست منصب باب از باب انفعال هست اسم مفعول و اسم فائل یکی هستند منسب و منسب فیه هر منصب هستن. خب اونی که فیها ها به خاطر این که از لازم نمیشه اسم مفهول درست کرد. این حرف جر به خاطر متعدی بودنش هست. ولی لفظش منصب با منصب یکیست. پس این نقطه رو هم اینجا یاد آور شام که فیلهای لازم چون در درس قبیه هم گفتیم فیلهای مف... لازم اسم مفهول اسم درست نمیشه مگر اینکه که با حرف جر اونا رو متعدی گردانیم. منجاب و منجابا و یختلف التقدیر این نقطه رو هم به ذهن بسپاری و یختلف التقدیر میفرماید که و یستوی می گفته بود که لفظ اسم فاعل و اسم مفعول مساوی است در همین جاهایی که ذکر شدند اینجا های مشابهشون فعل‌های یعنی مش اگر فعل مضاعفی به باب افتعال تفعول افعال برده شود همین حالت رو دارد که اینجا ذکر شدن و یختلف التقدیر میگه لفظشون با هم مساوی است ولی در تقدیر با هم فرق دارند محاب اسم فاعل با محاب اسم مفعول فرق دارد محاب اسم فائل اصلش محابب هست و اسم مفعول محابب هست متحاب متحابب متحابب پس تقدیرشون فرق دارد اما لفظشون با هم است این بحثی بود از اسم فاعل و اسم مفعول در فعلهایی که بیش از سه حرف اصلی داشتند فعلهایی که سه حرفی بودند حرف اضافی نداشتند یا بیش از حرف نداشتن به عبارتی دیگر، اسم فائل و مفعول در درس قبلی توضیح داده شد موفق و پیروز باشید.